اکایت. پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است. گفتا به صلاحش خجل کن. تو نیکو روش باش تا بد سگال به نقص تو گفتن نیابد مجال. چه آهنگ بربت بود مستقیم که از دست مطرب خورد گوشمال.